سوره بروج بسم الله الرحمن الرحیم بنامه الله که بخشای اندفاع با رحمت است و السماعی داتی البروج واليوم اليوم الموعود و شاهد و قسم به آسمان که برچ بسیار دارد و قسم به روز موعود و قسم به گواه و آنچه بدان گواهی دهند قتل اصحاب الاخدود انداردات الوقود که اصحاب اخدود صاحبان گودالهای آتشین هلاک شدن گودالهای آتشین و بر اذ هم عليها قعود آن هنگام که کنار گودال ها نشسته بودند و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شود بر آن چه بر سر اهل ایمان می آوردند گواه بودند و ما نقمو منهم إلا أي بال ایمان هیچ گناهی نداشتند جزان که به خداوند قدرتمند و ستودنی ایمان آورده بودند الَّذی والله كل شهید شهید. همان خداوی که، فرمان ربایی آسمان ها و زمین از آن اوست و بر هر چیز گواه است. اینن الذین فتن تمام کسانی که مردان و زنان اهل ایمان را شکنجه کردند و ننمودند فلهوم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق عذاب جهنم و عذاب جهنم و آتش برایشان مهیاست این <تصفح> الَّذِينَ آمَدُوا و الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي و برای کسانی که به حقایق ایمان آوردند و عملکرد نیک و شایسته داشتند، بهشت است که نار در آن جاری است و این همان پیروزی بزرگ است این شدید. بدون که مجازات پروردگارت سخت و سنگین است هو و او هو است کسیست که نخست خلق می کند و آنگاه باز می گرداند. و هو الغفور الودود ذو العرش المجید. او آمرزنده و با محبت است صاحب عرش ارجمند و بزرگ است فحال لی یرید اراده کند به انجام می رساند هل اتا حدیث الجنود آیا ماجرای سپاویان را شنیده ای؟ فرعون و ثمود سپاویان فرعون و ثمود بل الذین کفرو فی تکذیب آری کسانی که به حقایق کافر شدند همواره در این کار آنند حالان که خداوند از هر سو برانها احاته دارند بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ آری این قرآن مجید است در لوگی راست گفت خداوند بلند مرتبه و عزیز کاری از مؤسسه قیامبر مهر و رحمت سلالله علیه و علیه و سلم